رفقه های میپرسن، آقا چیکار کنیم این سفر نورانی تر بشه؟ دارم عرض میکنن، احساس وظیفه کن بگوی آبا عبدالله، من وظیفه اومدم من کای نکردم من باید در راه تو قطعه قطع میشدم خانواده من به اثری میبردم حالا که، الحمدلله، همه هم دارن پذیرایی میکنن، منم هم شرمنده دیگه چه قدم پیاده برای تو نیا و به چه دردی میخوره زندگی؟ نسله های آینده بچه هام خواهند پرسید بابا تو و بابا بزرگ تو عربه این را بود میرفت. من وظیفه من کاری نکردم من بقیه این روایت رو نمی خونم تا اون روایتی که می فرماد حق و غنیه ان یعتی قبر الحسین واجب است بر کسی که غنی است فسنته مراتای در یک سال دو بار باید بیاد و حق علی الفقیر حلی کسی نداش چی ان یاتیه فسنہ مره کسی نداش یه بار بره هر سال بره نه یک بار بره مثل حج که یه بار اگه رفتی اونم اگه داشتی حالا نداشتی چی هیچی هر سال فقط یک بار برو زیارت قبل عبا الحسین چرا اینو به ما فرمودن؟ چرا میخوان ما همه جمع بشیم هر سال اینجا؟ به خدا قسم اگر هر سال جمع شده بودیم کربلا مثل این عربینه هایی که تازه شروع کردیم مدرت ما امنیت رفاه آزادی همه چی برای ما آورده بود و ما امنیت و رفاه و آزادی و خوشبختی رو برای همه مردم جهان هم داده بودیم در یک روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید یا صدیر حضور و قبر الحسن فی کل یوم زیارت می قبر ابو عبدالله الحسن رو هر روز گفتم آقا نه هر روز نا تعجب میکنه بعد حضرت می فرمات، فما ما اجواکم بعد چرا چرا انقدر جفا میکنید بابا آخه من هر روز چجوری فرمود هر روز نمیتونی هفته یه بار نشود ماهی یه بار نشود سالی یه بار امام صادق از هر روز شروع میکنن خدا شده من اینا رو برم بالا منبر و که کسی کسی قبول از ماکه که آقا بی خود حرف نزداریم مردم زندگی داره من این کلمات امام صادق رای سلام دارم برای شما میگم بعد حضرت در ادامه میفرماید که نمیتونی هر روز بری زیارت همون جایی که هستی خونت هستی برو یه جای بلندی رو به قبر عبا عبدالله الحسنگ بیس سه مرتبه بگو سلالله علیک یا عبا عبدالله الله علیک یا عبا عبدالله سلالله علیک یا عبا عبدالله, عبدالله. رفت من سؤال از شما میکنم چرا چرا بنا شد موضوع بدیم برای فکر چرا ما باید هر روز سلام بدیم به عبا عبدالله این کجای دین ما رو درست میکنه؟ این کجای روح ما رو اصلاح میکنه؟ این چه جوری در خون ما جاری میشه؟ بعد چه آثاری داره؟ تو رو خدا روش فکر کنیم چرا امام صادق با ما اینجوری صحبت میفرماین؟ حق الحسین علیه السلام فریزتون من الله واجبتون علا کل مسلم حق عباد الله الحسین علیه السلام یک واجب است. در روایت دیگری داره که هر امامی حقی بگردن بقیه مردم داره که این حق رو مردم نمیتونن ادا کنن مگر با زیارت قبرش تو رو خدا مردم چقدر اماموسیم بگردن ما حق داره روایات در این باب زیاد بگذارید من بگذارم از روایاتی که نه سواب عجر زیارت رو ذکر میفرماین ضرورت زیارت رو اعلام میکنن الان بر این ضرورت دو تا موضوع دیگه اضافه شده یکی کلام امام حسن عسکری علیه السلام که میفهمد علامت شیع زیارت 40 دیگه از علامت که نمیشه گذشت تا اینجا بس این بود زیارت کلان ثواب داره زیارت کلان ضرورت داره حالا اربعین میادگاه علامت من باید برم دلیل دیگه ای که اضافه شده این است که این روایت امروز بهش عمل شده تجمع مؤمنین ایجاد شده قدرت اسلام داره به نمایش گذاشته میشه اگر من بتونم فرصت پیدا کنم در این نمایش عظیم قدرت اسلام ناب و حضور پیدا کنم تقویت کنم با سه روز بیاد روی اسلام رو تقویت کنم تاریخ قریب اسلام رو قربتش رو برطرف کنم شرایط پدید اومده نیام بعد از من سؤال بکنن چرا نیومدی؟ آیا دلیلش این نبوده که تو اهمیت ندادی به قدرت اسلام بعد خونه های اون مظلوم ها رو پای من بنویسن من چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر پس فردا من اربعین نرم زیارت چرا نرفتی چرا به این قدرت افزوده نکردی من چه جواب بدم همه جمع شده بودن اوا ظرفیت هم باید باشه که ده ها میلیون بیان ظرفیت باید ایجاد بشه دولت ها کارشون همینه که ظرفیت برای زندگی مردم ایجاد کنن وظیفه دیگه ای ندارن دولت ها مردم میخوان از جای عبور کنن دولت ها باید پل بزنن از جای دیگری میخوان بار ببرن باید وسیله حمل و نقل فراهم کنن حالا مردم ایران هم بلند شنم برن پشت ها من دعوت نمیکنم خدا شاهد ولی فوقش راه نبود میگه یا ابا عبدالله من تا مرز اومدم تو خونش نشسته میگه آیا من برم راه باز میشه بذاره التماست کنن بگم یا بگو مقا من اومدم راه نبود برگشتم ما دیویز هزار شهید پشت مرزها دادیم راه نبود به شهادت رسید افتاد بذارید به جهان نشون بدید حسین ما چقدر برای ما قیمت داره هی یا امام حسین چقدر براتون قیمت داره میخوام یه نگاه دیگری داشته باشیم نگیم احساس و شور ضرورت قدرت اسلام رو الان داره به نمایش میگذاره دیگه این آمار نباید بیاد پایین